مصنوی معنوی مولوی برنامه 131 جواب گفتن مؤمن سنی کافر جبری را و در اثبات اختیار بنده دلیل گفتن سنت راه باشد کفته اقدام انبیا بر یمین آن راه بیابان جبر که خود را اختیار نبیند و امر و نحی را منکر شود و تعویل کند. و از منکر شدن امر و نحی لازم آید انکار بهشت که بهشت جزای متیان امر است و دوزخ جزای مخالفان امر. و دیگر نگویم به چه انجامد که ال و یک فیهل اشاره و بر یسار آن راه بیابان قدر است که قدرت خالق را مغلوب قدرت خلق داند و از آن فسادها زاید که آن موقع جبری برشمرد گفت مؤمن بشنو ای جبری خطاب آن خود گفتی نکاوردم جواب بازی خود دیدی ای شطرنج باز بازی خسمت ببین پهن و دراز نامه عذر خودت برخاندی نامه سنی بخان چه ماندی نکته گفتی جبریانه در قضا سر آن بشنو زمان در ماجرا اختیار هست ما را بیگمان حس را منکر نتانی شد ایان سنگ را هرگز نگوید کس بیا از کلوخ کس کجا جوید وفا آدمی را کس نگوید هین بپر یا بیا ای کور تو در من نگر گفت یزدان ما علی العما هرج کی بر کس هرج رب الفرج کس نگوید سنگ را دیر آمدی یا که چوبا توچه بر من زدی اینچونین واجست ها مجبور را کس بگوید یا زند معذور را امر و نهی و خشم و تشریف و اطاب نیست جز مختار را ای پاک جایب. اختیار هست در ظلم و ستم. من از این شیطان و نفس این خواستم. اختیار اندر درونت ساکن است. تا ندید او یوسف را نخست. اختیار و داعیه در نفس بود روش دید آنگه پروبال گشود سگ به اختیارش گشته گم چون شکمبه دید جنبانید دم اسب هم هوهو هو کند چون دید جاو چون به جنبد گوشت گربه کرد مو دیدن آمد جنبش آن اختیار همچون نفخ زاتش گیزد شرار پس به جنبد اختیارت چون بلیز شد دلاله آردت پیغام ویز چونکه مطلوب بر این کس عرض کرد اختیار خفته بکشاید نورد وانفرشته خیرها بر رغم دیو عرض دارد می کند در دل غریو تا به جنبت اختیار خیرتو زان که پیش از عرضه خفته است این دو خو پس فرشته و دیو گشته ارزدار، بحر تحریک عروق اختیار. می شود ها و وسوسه، اختیار خیر و شرت ده کسا. وقت تحلیل نماز ای نمک، زن سلام آورد باید بر برملک. که ز الهام و دعای خوبتان اختیار این نمازم شد روان باز از بعد گناه لعنت کنی بر بلیس ایرا کزوی منحنی این دوزد ارزه کنندت در سرار در حجاب غیب آمد ارزدار چون که پرده غیب برخی ز پیش تو ببینی روی دلالان خیش و سخنشان واشناسی بگزند کان سخنگویان نهان اینجا بودند دیو گوید ای اسیره تاب آتن می کردم نکردم زور من. فرشته گویدت من گفتمت که از این شادی فزون گردد غمت. آن فلان روزت نگفتم من چنان که از آن سوی است ره سوی جنان. ما محب جان و روح افزای تو، ساجدان مخلص بابای تو این زمانت خدمت هم می کنیم سوی مخدومی صلایت می زنیم آن گره بابات را بوده ادا در خطاب اسجدو کرده ابا آن گرفتی آن ما انداختی حق خدمت‌های ما نشناختی این زمان ما را و ایشان را عیان در نگار بشناس از لحن و بیان نیم شب چون بشنوی راز ز دوست چون سخن گوید سحر دانی که اوست ور دو کس در شب خبر آرد را روز از گفتن شناسی هر دو را بانگ شیر و بانگ سگ در شب رسید صورت هردو ز تاریکی ندید روز شد چون باز در بانگ آمدند پس شناستشان زبانگ آن مند مخلص اینکه دیو و روح ارزدار هر دو هستند از تتمه اختیار اختیار هست در ما ناپدید چون دو مطلب دید آید در مزید اوستادان کودکان را میزنند آن ادب سنگ سیاه را کی کنند هیچ گویی سنگ را فردا بیا منده هم بد را سزا هیچ عاقل مرکلوخ را زند هیچ با سنگ اتاب کس کند در خیرد جبر از قدر رسواتر است زانکه جبری حس خود را منکر است منکر حس نیست آن مرد قدر فعل حق حسی نباشد ای پسر منکر فعل خداوند جلیل هست در انکار مدلول دلیل آن بگوید دود هست و نار نی نور شمع بیز شمع روشنه وین همی بیند معین نار را نیست میگوید این کار را جامش سوزد بگوید نار نیست جامش دوزد بگوید تار نیست پس تفستوت آمد این دعوی جبر لاجرم بدتر بود زین رو ز گبر, گبر گوید هست عالم نیست رب یاربه گوید که نبود مستحب این همه گوید جهان خود نیست هیج هست صوفستایی در پیچ پیج, پیج. جمله عالم، مقر در اختیار امر و نحی این بیار و آن میار او همه گوید که امرو نهی لاست اختیار نیست این جمله خطاست حس را حیوان مقر است ای رفیق لیک ادراک دلیل آمد دقیق زان که محسوس است ما را اختیار خوب می آید برو تکلیف کار درک وجدانی چون اختیار و ازترار و خشم و استبار و سیری و نهار بجای حس است که زرد از سرخ بداند و فرق کند و خورد از بزرگ و تلخ از شیرین و مشک از سرگین و درشت از نرم و به حس مس گرم از سرد و سوزان از شیرگرم و تر از خشک و مس دیوار از مس درخت پس منکر وجدانی منکر حس باشد و زیاده که وجدانی از حس ظاهرتر است زیرا حس را توان بستن و من کردن از احساس و بستن راه و مدخل وجدانیات را ممکن نیست ول آقل و یک فیه الاشاره درک وجودانی بجای حس بود هر دو در یک جدول ای ام می رود. نغز می آید بر او کن یا مکن، امر و نه یا ماجراها و سخن این که فردا این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است. ای سنم وان پشایمانی که خوردی زان بدی، ز اختیار خیش گشتی محتدی. جمله قرآن امرو نهیست و وعید، امر کردن سنگ مرمر را کدید، هیچ دانا، هیچ عاقل این کند با کلوخ و سنگ خشم و کین کند که بگفتم کین چونین کن یا چنان چون نکردیدهی موات و آجزان عقل کی حکم کند بر چوب و سنگ عقل کی چنگ زند بر نقش چنگ کی غلام بستده است اشکسته پا نیزه برگی رو بیا سوی وغا خالقی که اختر و گردون کند امر و نهی جاهلانه چون کند احتمال عجز از حق راندی جاهل و گیج و صفیحش خاندی عجز نبود از قدر وار خود شود، جاهلی از آجزی بدتر بود. ترک میگوید گوید قنق را از کرم، بی سگ و بی دلق آسوی درم. و از فلانسوی را هین با ادب تا سگم بندد ز تو دندان و لب. تو با عکس آن کنی، بردر روی، لا از زخم سگ خسته شوی. آنچنان رو که غلامان رفتند، تا سگش گردد حلیم و مهرمند. تو سگ با خود بری یا روبهی، سگ بشورد از بن هر خرگهی، غیر حق را گر نباشد اختیار. خشم چون می آیدد بر جرم دار چون همه خواهی تو دندان بر عدو چون همه بینی گناه و جرم ازو گرز سقف خانه چوب بشکند بر تو افتد سخت مجروحت کند هیچ خشم آیدد بر چوب سقف هیچ در اندرکین او باشی تو وقف که چرا بر من زد و دستم شکست. او عدو و خسم جان من بوده است. کودکان خرد را چون میزنی، چون بزرگان را منزه میکنی. آن که دزدد مال تو گویی بگیر دست و پایش را ببر سازش اسیر. وان که قصد اورت تو میکند، صد هزاران خشم از تو می دمد. گر بیاید سیل و رخت تو برد، هیچ با سیل آورد کین خرد. ور بیامد باد و دستارت ربود، کی تو را با باد دل خشم نمود؟ خشم در تو شد بیان اختیار تا نگوی جبریانه اعتزار گر شطربان اشتر را میزند آن شطر قصد زننده می کند خشم اشتر نیست با آن چوب او پس ز مختاری شطر برده است بو همچنین سگ گر برو سنگ زنی بر تو آرد حمله گردد منسنی سنگ را گرگیرد از خشم تو است که تو دوری و ندارد بر تو دست عقل حیوانی دانست اختیار، این مگو ای عقل انسان شرم دار روشن استین لیکن از تم سهور آن خورنده چشم می بندد ز نور، چون که کلی میل او نان خورده نیست، رو به تاریکی نهد که روز نیست، هرس چون خورشید را پنهان کند، چه عجب گر پاشت بر برهان کند، حکایت هم در بیان تقریر اختیار خلق و بیان آنکه تقدیر و قضا سلب کننده اختیار نیست گفت دزد شهنه را کی پادشاه آنچه کردم بود آن حکم اله گفت شهنه آنچه من هم می کنم حکم حق است ای دو چشم روشنم از دکان گرکس ترب براد کین ز حکم ایزد است ای باخراد بر سرش کوبی دو سه مشت ای کره حکم حق است اینکه اینجا باز نه در یکی تره چو این آزر ای فضول می نیاید پیش بقال قبول چون بر این آزر اعتماده می کنی بر حوالی اجده های می تنی. از چونین عذر ای سلیم نانبیل خون و مال و زن همه کردی سبیل هر پس سبلت تو برکند عذر عوضر آرد خیش را مزتر کند حکم حق گر عذر میشاید شاید تو را پس بیاموز و بده فتوا مرا که مرا صد آرزو و شهبت است دست من بسته زبیم و حیبت است پس کرم کن عوض را تعلیم ده برگوشا از دست پای من گری اختیار کرده ای تو پیشه ای. که اختیار دارم و اندیشه ای ورنه چون بگزیده آن پیشه را از میان پیشه ها ای کت خدا چون که آید نوبت نفس و هوا بیست مرده اختیار آید تو را چون برد یک حبه از تو یار سود اختیار جنگ در جانت گشود چون بیاید نوبت شکر نعم، اختیارت نیست و سنگی تو کم دوزخت را عذر این باشد یقین کن در این سوزش مرا معذور بین. کس بدین حجت چو معذورت نداشت، وز کف جلاد این دورت نداشت، پس بدین داور جهان منظوم شد، حال آن عالم همت معلوم شد. حکایت هم در جواب جبری و اثبات اختیار و صحت امرونای و بیان آنکه که عذر جبری در هیچ ملت و در هیچ دین مقبول نیست و موجب خلاص نیست از سزای آن کار که کرده است. چنانکه خلاص نیافت ابلیس جبری بدان که گفت به ما اغوی تنی ول قلیل و یدل علل کثیره آن یکی می رفت بالای درخت می فشند آن را دزدانه سخت صاحب باغ آمد و گفت ای دنی از خدا شرمید کو چه می کنی؟ گفت، از باغ خدا بنده خدا، گر خورد خرما که حق کردش عطا آمیانه چه ملامت می کنی؟ باخل برخان خداوند غنی؟ گفت، ای ایبک بیاور آن رسن، تا بگویم من جواب بلحسن، پس ببستش سخت آن دم بر درخت، میزد و بر پشت و ساقش چوب سخت. گفت آخر از خدا شرمی بدار، میکشی این بیگنه را زار زار. گفت از چوب خدا این بندهش میزند بر پشت دیگر بنده خوش. چوب حق و پشت و پهلو آن او. من غلام و آلت فرمان او. گفت، توبه کردم از جبر ای ایار. اختیار است، اختیار است، اختیار. اختیارات، اختیارش هست کرد. اختیارش چون سوار زیر گرد. اختیارش اختیار ما کند، امر، شد بر اختیار مستند حاکمی بر صورت به اختیار هست هر مخلوق را در اقتدار تا کشد به اختیار ساید را تا برد به گرفتگوش و زاید را لیک به چالت سن سمد اختیارش را کمین او کند اختیارش زید را قیدش کند بی سگ و بیدام حق سیدش کند آن دروگر حاکم چوبی بود و آن مصور حاکم خوبی بود. هست آهنگر برآهن قیمی هست بنا هم برالت حاکمی نادر این باشد که چندین اختیار ساجد اندر اختیارش بندوار قدرت تو بر جمادات از نبرد کهی جمادی را از آنها نفیه کرد قدرتش بر اختیارات آنچنان نفیه نکند اختیاری را از آن خاستش میگوی وجه کمال که نباشد نسبت جبر و زلال. چون که گفتی کفر من خاست ویه است، خاست خود را نیز هم میدان که هست. زان که بی خواه تو خود کفر تو نیست. کفر بی خواهش تناقض گفتنیست. امر آجز را قبیه هست و زمیم، خشم بدتر خاص از رب رحیم، گاو گر نگیرد میزنند، هیچ گاوی که نپرد شد نجند، گاو چون معذور نبود در فضول، صاحب گاو از چه معذور است و دول، چون نی رنجور سر را بر مبند اختیارت هست بر سبلت مخند جهت کن که از جام حق یا بی نوی بی خود و بی اختیار آنگه شوی آنگه آن می را بود کل اختیار تو شوی معذور مطلق مست وار هرچه گویی گفته می باشدان، هرچه روبی رفته می باشدان، کی کند آن مست جز عدل و ثواب که زجام حق کشید از تو شراب. جادوان فرعون را گفتند بیست مست را پروای دست و پای نیست. دست و پای ما مه آن واحد است، دست ظاهر سایه است و کاصد است.